اللهم ملاذك تصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد طرام قبل از يكدار ساوروس كريم جاي بسیار خوشی است که یک تن از برادرای روسی ما که اصلا در اکفامل مسیحی تولد شده بودن و با خودشان به امرای فامیلشان خدای از و جل اینا را هدایت کردند و بدین دین مشرف اسلام مشرف شدن و کلمه لا اله الا الله محمد الله را خواندن، و افتخارشان کلتان بلن الله اکبر الله این مرتبه ختم بر انشاءالله ما فرصت خود دادیم که در باری خود اگر چیزی میخواست در باری مسلمان شدن خود چیزی ببین و شما هم سوالای داشته باشه بسم الله الرحمن الرحیم درس امروز ما اموان درس شروط قبولی عبادت است بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم محترم انسان مسلمان بعد از ایک ایمان آورد و خدای عز و به وحدانیت شناخت نقطه بعدی از او عبادت ها را بشنازن. و وقتی ما عبادتها را شناختیم بعد از شناخت عبادتها مهمترین نقطه ای است که انسان از خود سوال بکنه که آیا عبادت را که ما تقدیم میکنم این عبادت قبول خدای عزوجل واقع میشه میشن و یا نمیشن و این سوال از خود انسان بکنه که ما چی کارهایی را بکنیم که خداوند عبادت ما را قبول بکنه خب ما که بسیار مردم نماز میخونن روزه میگیرن حج میرن عبادت میکنن حتی سالیان طویل در جبهات میباشن و شهید میشن ولی ولی گرده است که وقت ما ای اعمال می کنیم آیا ای اعمال ما قبول بارگاه الهی قرار می و یا نمی وقتی ما تحقیق کردیم علما اسلام خوب قرآن عظیم شان احادیث پیامبر معصوم سلام و علمای اسلام اینا یک قاعده بر ما که عمل مسلمان با سه شرط قبول میشه و درگاه خداوند متعال جنب بشه سه شرط در شرط اولیه قبولی عمل انسانی است که عمل انسان باید مطابق طریقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. وقتی ما میگم که لا اله الا الله، خب این توحید شد. ما به هدف توحید وقتی که حرکت میکنیم در یک مسیر چی بکنیم که رضایت خدا را حاصل بکنیم؟ خود خداوند مطال جل و جل و ما گفته که محمد رسول الله بگویم. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوایی که تو قبول شود باید صبح تا بشن و هر قدمی رو که نگذاری از یک آلم از یک کتاب از یک دانشمند پرسان کن که برادر این کار رو من میکنم. آیا پیغمبر خدای این کار رو من که توفلاین نفر خفم هستم پیغمبر خدا به این قسمت اگر ایواز از من چی میکرد همیشه ای قسم قایده پیش داشته که من امروز یکی مشکل دارم اگر پیغمبر خدا نبید در این مشکل چی میکرد و در حل در مشکل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چی گفته قلیم کنتم تو حبون الله فکبیعونی خود خداوند مطابق جل و جل و بر پیغمبر سلام که بگو بر از مردم که اگر شما حقیقتا خدا را خوش دارین پس مطابعت ما را بکنین از من پیرهی بکنید. ببینیم که پیغمبر خدا نماز چه قسم خونده من نماز میخونم آیا پیغمبر خدا همین قسم نماز خونده که من میخونم عدی اقل انسان دارم به خود پرسوان بگنم برای پیشی اگر آن من این دنیا که من میخوام نماز الله <سؤال> و سرو این نماز می کنم به خدا خدای قسم خوانده ایگه وقتی قسم خوندن واس درس است ایگه که نه پدر عزیز خدا کی قسم نماز نمی خواد آیا اصحاب پیغمبر صلی علیه سلام که صحابه کرام بودن این قسم نماز خوانده؟ مگر نه برادر اگه قسم تو نماز میخوانی یک دفعه روی تا جور میگیری یک دفعه خان جور میگیری یک دفعه آب رو یک دفعه دوشت سایه میکنی یک دفعه تا اصله پای رمضان اصلا قسم نماز نمیخواد هیچ قسم دفعه یک صحابین برکت خوار داخل میشم من پیش دکتر دکترم دکتر سر چطور کنم نگاورا برادر الله وقت, وقت نبود که الان برای مریض تا کاراشو دست پایش خالص بکشن مجبور مستقیم کشیده شوه ولی خو خار بسیار است و حضرت علی کرم الله وجه که لكش بگم چی دردش برام ها ها بسیار درد برام کوله یه کسامات گفتم سی صحابی پیغمبر نه فهمی بفطو نه میشناسیش وقت مشکلی شده چی کنم ورش ده نماز وقتی که ده رفت کارخت میشه مثل درخت خشک در مقابل ذات خدای عزیز و جان استاد میشه خارم از باش بکشی احساس نمی اینی بود نماز طریقی پیغمبر سلام که اصحاب کرام میخوندن پس نماز ما وقتی قبول میشه که ما نماز خدا مطابق طریقی پیغمبر سلام علیه و سلم بخونم بر زبانت همد گویا در دلت پیدا سنم ای به کافر و ظاهر مسلمانی چی سو وقتی که م روزه میگیرم آیا روزی مه سبب ازای شده که مرا تقوا تا با یک مصیبتی که سر یک مسلمان وارد میشه ما هم احساس و غم و اندوه بکنم وقتی ما کتاب امام بخاری را میخوانیم، امام بخاری برای برخو... گرفتن یک حدیث ماها سفر میکرد ماها سفر میکرد دو ماهی یک منطقه حکومتشه یا امام دا دافلانی قریه فلانی منطقه اونجا یک عالمه هست که یک حدیث پیغمبر روایت میکنه یک حدیث پیغمبر این مبارک دو ما، آنه ترانسپورتی که امروز ما شما داریم این که ما شما داریم به ها وجود نداشت دو ما سفر میکرد بعد از دو ما، ماندگی و زلگی میرفت یک حدیث پیغمبر از پیش از نفر مشید و درج کتاب خود میکرد که امروز با تو صحیحی بخاری رو میخونیم با به خاطر درس خواندن در روز جمعه، اگر مجرد یک که بسیار عادی پیدا شود. او نشوی خاله بچه مامای بچه کاکای خسر رو یک خط میدارم خط میدارم دیگیم روز درس نمیرم از خاطر عوامی مثل من لحظاتی که در مجلس درس میشینه این خواهد نیست اینجا رحمت خدای از دواجن نازم میشه که یک جوانی در جوانی در مجلس این میشینه سر از اون جوان رحمت خدای از دواجن نازم میشه و خداوند بر ملایکه که انتقاد داشتند در آمدن انسان در خلقت انسان برشان میگه ببین که شما میگفتون که این جوانا گفتی فی الارده فساد در زمین میکرند ببینیم که ششتان گپ خدا و گپ پیغمبر خدا را میشنون و همه این ملائکه این ملائکه خواب میلیون ها من اطراف میشنن و باز پیش خدای عزا و در روز قیامت شهادت موترم میته که ایمانی ای جوان در جوانی ای سفید باریش سفید ای بچی نوجوان در نوجوانی خود ای بزرگ با بزرگی خود و ای خود باسم خود خود آمدن به خاطر که پندقی کلام خدا را بشنوم. بس نشستن و اشتراک کردن در اوتو مجالس مظلیفی که ملائکه ها, ملائکه ها پیش خدای عزوجل برند و برن پروردگارا رحمت تسرتو این سالها نازل کن چه وقت میتونیم؟ که به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم درس بخواهد نماز ما به طریق پیغمبر باشه روزه ما به طریق پیغمبر باشه ازدواج وقتی که من کنیم طریق پیغمبر باشه اختیار نامزد که می باید به طریق پیغمبر باشه دوست که اختیار میکنیم باید به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه عفتای که که در زیر سایه عرش خدا باشند از اونها یک نفر از او که شما گفتن میتونم یک طایفی او که در زیر سایه رحمت خدای عزوجل میباشن کسی که یک نفر رجولان دها و فلاح میگن به مجلس فلانی فلانی نطرفا رو دو دارم نه به خاطر پیسش نه به خاطر کاناتش با خاطر رضاعت خدا میره مرید دوست بس خدا وقتی که شما دوستی تن خاطر معبود بفرمانده چوکی چا... برش میده که فی یوم کان مقداره خمسین الف سنت نماتا حدود در روزی که یک روزش پینجو هزار سال دنیا است باز انسان چوکی حاصل میکنه چوکی که زیر سایی رحمت خدا ورد مطال جل جمعه است شرط دومش اخلاص شرط دوم پذیرش عبادت که عبادت از خدای عزوجل پذیره؟ اخلاص است اخلاص چه مانا؟ اینه صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی اینه صلاتی نماز ما و نسوکی تمامی مثل مراسق ما و محیای و زندگی ما و وما مماتی و مرگ ما لِلَّهِ لَا حرف جرل التعالیم یه علمان بگم لحرف جرل علت بیان بکن چرا؟ للله رب للله این ضرب بلاشی بر تخصیص است خاص از برای خداوند متعال جل جلاله است لله خاص از برای خداوند متعال جل جلاله است یک عالم بسیار عالم مشهور دانشمند معروف در همه شهر جای رفته بود یک نانبای همیشباره شاگرد خود میگه که عالمی بسیار بزرگا وراثه فامیله چطور است و است؟ میگه بر خود قسم میگام برای خود, خود قسم میکرد لکن شهرت هم نمیشنا نمیشو از روزی عالمی بیچاره روز گشته میبشه یه طرف سر میکنه طرف چیزی نزدیک میره به نانبایی وقتی که میبینه در نانبای میگه لطفه بکنی، یعنی باید میخواست از این دستش گستن از نبایی بکشش بیرون برو بس فرمان بنامان خدا بدیم گشتنانم درست خواهد دستارت که گشتنمان دیم خواستایی بیر از این سری گرفتن از نبایی بیرون بکشش این نفر یک در نبایی است شاگر داشت این حاله بدیدن بشبه این نفر به که از نبایی کشیدی فاهم کی بود؟ گفتیم این نفا میده گفتیم فلانه این نیست که تو اینجا برای خدا اون کسی که نامش در شرق و غرب افتاد خود بیچاره آجز آدم اینا آمدا میدهد فلان این ساید دایی دنگا میرم از پشش گیرش میکن در اجای قرار ششتا بیچاران بیشت صفیت آلاتش اش می‌دونه دستایش هم، اش می‌کنه پایایش هم، خود می‌گه که عالم سعد ببیزارد ببرشی، مولای سعد بیزارد ببرشی، وستارم اتارم بسیار برشی. ماش شباهت داریم چطور؟ چه اولیم؟ بلکه آخر ایه با خاطری که راضی بسازن ولی من دخاری خودم موفق تهیه میکنه کسی صاحب نظر نمیخواد که شروع از نواییدن و آنگارنگا جور میکنه به خاطر از این ما صاحب خاطر شما این محفل اگا تو به خاطر شما کلی این مردم من خاصم به خاطر شما دعوت اداره به خاطر شما به خاطر شما به خاطر شما یالهن بیچاره مگه خوب به خاطر من به خاطر من به خاطر من یک دفعه من به خاطر خدا خب مردم شش شنون نارخور دان و داخل گفتن یک فصد مکس بفرمایید. اصلا شما سوال نه میخوایید سوال کنم؟ گفتم الان میگیم که این دو زخی کیست؟ میگم مارشلوف که اصلا گفت دوزخی گفت دوزخی زخی مخلوق و بخاطر خدا برما دو او از که با خاطر مخلوق سعی نکند فرمان میده و با خاطر خدا نه سلام نمیده. یعنی همیشه که بر ما میمونی که دیگه می‌دونی دو زخی است. اول از که ما میگیم چیم؟ با خاطر رضای خدا یک پرچنان داری بر من نداد و برای از و بخاطر مردم سی ست نفر خاطر بخاطر نداد و این روی از شما در افغانستان چقدر زیاد داریم چرا میمانی کری؟ از درزاده هاییم باید چی میکنی؟ خب چرا با پدر چی میکنی؟ انسای ها و و با شریک چی میکنی؟ یک میمانی در افغانستان منش کنیم که دوگه است کسی که میمانی میکنه. که به خدا ما به خاطر خدا کردم. یک میمونی به خاطر خدا نمیکنه. چیز آذرزادیم، چیز فلانی، چیز فلانی چیز کرد. اون که او عالم کف خلاصش. کسی که به خاطر خدا نمیکنه، به خاطر مخلوق میکنه، اینم میدونه چیز. و اگر کسی یک عملی را انجام می‌ده که 99 فیصد عمل از او خاطر خداست و یک فیصد یک مخلوقه در نظر خود گرفتن خدای از زمجن نیم نیستم خلیستان امی 99 را هم ببطه من هیچ کار را دارم یا خالص لله باشه یا خالصا لغیر الله این را اخلاص و عمل انسان وقتی قبول میشه که را اخلاص باشن خدایم قیه کار کردم به خاطر نزویت خدای از زمجم. آیا کسی که اخلاص به دین و به ایمان و به عقیده و به خاطر خدای از زمجم کار میکنه ضروری است که در یک منطقی در یک کشوری که سطحان طفل به خاطر بیدویو میمورن از بجایی مردمان را یخ میزنه و این پایزه دفعه حج نفلی میره هر سال حج نفلی رفته میره ما فکر نمی اگر کس اخلاص داشته باشه یک ذره هم داشته باشه اگر بینی که نابینا و چه هست اگر خاموش بیشینی گناه است و سعدی بگن ولی آدم اعضای یک دیگرن. چو در آفرینش زیک جوهر هست چو عضو بدرد آورت روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو کس مهنت دیگران بغمی نشاید که نامت نهند آدمی سردی میگه این انسان است مسلمان افر چی می کنی از بیدوی می مره زنهای کار بکنه جوانای ما را دیگران شکار میکنن با اسیسات کلیسای مسیحی و سلیبی تمام روز جوانای ما را شکار میکنن. بنابایی از که مسلمان هستیم خاطر رضای خدای عزیز و جل ادعاقل یا برنامه بر جوانای خود داشته باشیم قبامش برای نفس است یک نفر پنج لگرطه داروسی بچه خود به خاطر خوش ساختن مردم مصرف میکنن و به خاطر یک برنامه اسلامی از پنج هزار خود تیر نمیشن اینش وقت مخلص خودا نام نمانن به نمکز عملش قبل میشن که به خاطر رضای خدای عزوجل باشه جل باشن به خاطر اینکه خداوند متعال خوره تفصیلا بخاطر این است که خدا از پیشش خوش شوم. به که مردم یک روزا که برای من 왔다 استاد شنو کمی که باز مردم چی گا چی مردم نیستم. من فکر می من چی میگم؟ نمیگم که مردم چی میگم؟ من فکر من خودم چی میگم؟ اینکه ما چیزی میگم مردم, چی مردم خان گفت اگر بعدشون گفت یه تا میگم گفت یاد رکات نمال و اگر میخواد دار رکات نمال سمار غیبت میگیرم خانش آبا خانش آبا یک چهار فری نفرش ایشتا پیش خلیفه وقت غیبت یک آله نمی کردن ولی این سبب ثبت طرح که دیگه پیش سر چطور است این کمرش چنگ است یکیش میگفت که چطور است این آلهی ثبت به ایترین خورماره خریداری کرد خورمار بسیار خوبی شد که یه دادش مرشم قیمت داشت. این سه خانواده یک دوست برای زیاد کسای که فرمید ما خوابت دیده که ما داریم این که را گرفت از که ما خوابت میکنیم رفتی به اتین بخورد شما به ترین اعمال تانیان تیونتای را رهبری با هر کلمه غیبت در بهترین عمال قبول شده ایتا برای ما با روان میکنی من رفتم بهتر میخورم ما روانتون باید گفتم باش. بخوام از که خدا تقریب کنه یک یعنی دو سات درام غیبت میکنم به خود روشی شد ایست نتیجه غیبت برای انسان وقتی که اخلاص داشته باشه اخلاص داشته باشه که در عمل خود همیشه بگوه که عمل خبول میخون شد بله بگه عمل خدا چی کرده ایران من کار کرده بود اگه گفتنیه خدا نکرده، صحابه کرام نکرده، هیچ عالما نکرده، من را 14 قرن بعد آوردم، دو تا که صحابه کنم که به اندازه صحابهش شخصینه نشه. بالله. و شخصیتایی که از کارهایی که خداوند میمونه، که در یا پس من با شخصیت برای دین این کار چرا بکنم؟ حتی که خدا ندفتن قرآن ندفتن پیغمبر خدا نکرده اصحاب کردن نکردن پس نه چون این کارا بکنم این معلوم میشه که من اخلاص ندارم شرط سیومی پذیرش قبول عبادت شرط سیومی که عبادت انسان قبول میشه که عمل انسان به اساس پاکی باشه یک نفر خداوند پیغمه سلام میگه که این الله طیب، لا یقبر الا این ذات خداوند از زواجن پاک است ارگز قبول نمیکنه مگر چیزی که پاک باشه. وقت نماز میخوای لباسات های که از پیسی حلال است یا از پیسی حرام. یک نفر حجم میره از پیسی رشوت از خیانت از پیسی فریبکاری از خون ملت وقتی که این میگه لبایی خدا میگه لعنت خدا سرتون ناسر بار شما باید یک مثال ساده یک میگه خانه کس میمان شدی یک نان بسیار خوبه برای میره سرین قابلی هست زیرشان برای خوبه یخنی است در سر شام خوب چهار طرفش میبای خوب است این روز هم اولیخ است این روز هم کلی چیز هست بسیار ببخشیم خواه نشیم وقتی که ساید یخنی رو پختنی کریم از این بولا یک توتا یک کسافت کنم ام ساید کرد بود یک این مجاست تفلش در این بایان این او هفته دارد بود خیلی است خبه ایسا دوست دارم من باید. تو که انسان استی بگه با اند... یک که من که ما خود بود الان لگه بریم خب برادر مفترم وقتی که تو تمام خوراکای خوبه به خاطر یک کثافتش براندازی یک دانه نخود میگن قبولش ته اخیرا که ته قابلی و همه چیز ذات کدی میگه چون این مسئله مرا تست میره میره بعدون قبول پای نمیخرم نمیخرم خدا بخاطری که تو انسان هستی قبول نمیکنی ای خداوند که ذات طیب است باکس ان الله طیبا و مردد ما خامسه می خرافریب ندید خداوند ذات پاک است یک شانزاه پولیه که دهو پیسی 1000 داد شد دا حرام او دا خدا قبول نمی کنه مگر اینکه همین سه وقتی زمی نمی گیره که تا رشوات تا رشوات و فنامه عادت قرنه پیدا و تنه روزه بر برای خدا خدا قبولش نمیکنه حتی یگانه اثر که دل مال دیگه را قسم نمیخورا به نام خدای عزوجل و زمین و از خود بسازن ولی نماز نماز و زمین قسمی که تا زنده است نماز بهونه خدا نمازش قبول نمیکنه قران میخونه از عزوجل قرانش قبول نمیکنه یه خدا میشه که من می تو قسم خوردم در خانی تو قسم خوردم حتی پیغندر صلی الله علیه وسلم وقتی که قضاوت نکنم او مردم من وقتی که قضاوت نکنم به اساس دلائل است که تو میری زبانت نرمز بسیار زبانت فساحت داره بسیار چربی داری بسیار شناخته داری والی صاحب و وکیل صاحب و فلانی صاحب میشمزی وقتی که تو از چربی زبان استفاده میکنی ما خود نمی مگه بانده هستم مگه بشرا هستم علم قضا ندارم اگر تصمیم کردم که تو خودت میوانی که غلط است پس به این غلطی اون ای چیز بر تو حلال نمیشه ولی که من پیغمبر خدا دارم تو تصمیم کنم چون من اساس طهارت ظاهری تصمیم میگیرم پس این حلال نمیشه که قسم کسی که قسم می خوره کسی که چاله فریب با چاله فریب پول دیگران رو بدست میاره کسی که تکیه پاکستانی بنامه تکیه جاپانی اصل پلستاره گاچ میفوشن و میفوشن خود پاکستانیست این خود حرام شن این خود خداوند که دی پیسه که باست تمام روز که ندمزی خودم بکش خداوند عملش قبول نمیکنه. دکتری که دکتر از خود میری پیشش میفوشنه که درد تو در ادنه پرستامول سیکا پرستامول که بخوریم نیا میشه نیسه برو خورو بچه مسئول خور ماینه است نواسی مسئول لابراتور است خانم خفا نشد او دفعه همیست دکتر باید بفانه که وقتی اتو کاری میکنه که او بیچاره مریزه میدوانه او پا تکن داخته لطفاً رسی تا تا کو برو تلویزیونی هم بکو برای که خود من دو سال که از این خیانت این خداوند است و قبول نمیکنه از کس استفاده کردن امروز دکتر فروشا در افغانستان بسیار زیاد هستن دکتر فروشا خواهر فروشا یه بار فروش وقتی که مجلس میشینه برای شما این که برادر عزیز دیونه حرام از حرام حرام از حرام مطلق در اسلام به نام طویاره ما چیز دیگری ندارم دید علماء کرام ششتم ما در اسلام مهر داریم مهر مهر چی است مهر پول است که وقت در حالت نکاح در این نشا و این حق و الی دختر است اجازه هازر باید به اون دختر پیغام هازر داده شود یا ما هي اول المین اما این که ما سلام میگنیم سه دو لاکرپیا و سه لاکرپا پیش از پیش برنمیبرد پاییزه، باز دو لاکرپا را گرفتیم که نباید شد. تکه تهاجمی میخورن. این انسان خدا قبول نمیکنه. و ازی ای این ای انسان فروشیه فرهنگی کشور ما و شماست که بناهم شربها، بناهم فلانی، یه حرام است کسی که میخواد. و کسی که بازیا حلال گفته میخواد، کسی که حرام و حلال میگن، ات تا در اقیادش تقصیر نیست. و اما دا مجلسا شیش چیم برادر نخوی ارغمه بیانست، ما شما از کجا مدینی، ما شما شما چطور که شما از این فغانی که از این بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو خواه قبتیم خدا خرابت کنه خدا اونمی دلاغرفیوی که تو داره تویانه میگیری و برات چیز میخوری خدا حفاک و نمونه برات مراکت جور کنه که روده و برمیده برات تر در بر بکنه بخاطر ازی که این مردم ها ازدواج حلال که پیامر خدا میگه که باید آروسی و ا و حرام سخت بسازیم اینا کوشش میکنن که حلال سخت چا تا کی جوانا به زنا مواجه شود جوان 3 زی پنج سال، 4 ساله میشن نمیتونن ازدواج بکنن و خاطر چی؟ به خاطر اینی می... جمعت که با سف اول مازيد قرار میگیره واذنه میکنه میگه الله و, عبر و خدا میگه در عذاب خدا شبیکت نماز خواننده تو حرام خورد گنده خورد تو از پول حرام، آمدی بر من نماز من میلی از پول, پول یاری که صحاستن که حکم مخلوقه رواج نسبت به حکم خدا تو واجب که خدا این تو میگه پیغمبر خدا میگه اینی حرام است خدا میگه اینی حرام است میگه نی رواج میگه که باشه پس وقتی که باعث واسطه رواج حرام هر رواج برای تو حلال ساخت حلال شده نمیتونه خداوند پاک است و در حدیث شریف که پیغمبر صلی الله علیه و چی میگه خود الی میگه اول ابن كثير الله ما ابن كثير تفسير ابن كثير as حضرات عبد الله بن أبي قال إن ين يأدي شرifa به با محض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوانم که یا ایوه الناس و مما فی الارد حلالا طیبا نگم شریف خوانم پیش پیغمبر صلی الله که ای مردم بخورین مما فی از آن چلی که در زمین خدایان براتان پیدا کرده حلال و پاک بخورین فقام سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه عزت عبدالله بن عباس نیم عزت سعد بن وقاص آمد یا رسول الله یا ب... رسول الله ای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اود الله ان يجعلنی مستجاب الدعوه با خدای متعال جان جری دعا بگو که من مستجاب الدعوه بساز از حضرت عدی وقاص برای پیغمبر صلی الله علیه پیغمبر صلی الله علیه دعا بگی که خداوند برای من مستجاب الدعوه بسازه وقتی که دعا میکنم خدا دعای من اجابت بکنه قبول کنه دعای من فقانم اگر رسول الله صلی علیه و سکو گفتن چی قیران به خدا؟ یا سعد اطب متعامک تکن مستجاب الدعوه تا پاک بساز تا پاک بساز مستجاب الدعوه میشی یا یعنی خوراکی که میکنی ایره حلال بساز از پول حلال بخو باز دعایت خدا قبول میکنه والذي نَفْسُ و محمد بِيَدِهِ حدیث شاری بسیار حدیث دقیق از گیره مسلمان بیالخ در خانی خود نشته بکنه و 24 متوجه باشه وَلَّذِهِ بیرانبه السلام قسم که وَلَّذِهِ قسم بذات است که نفس محمد بیدهی که نفس ما در تصرف از ان الرجل <سؤال> لا یاقز تو الحرام حرامفی جوفه وقتی یک شخص یک لبه حرام در شکم خود نپتن، ما یتقبل و ربین یا خداوند من خداون چل روز عبارت ازقب نمیکنه. با خودم یک لکمه حرام، او کسی که پیدا پ تمام ک شاد بودن، او کسی که کرده او کسی که از تو پیسه پیدا کرده، وخوی اینجا پیغمبر شد سلمه میگه واللوی سرکنیم باز عن ابن عباس عزت بیا الناس ای مردم كل اما في الارض حلالم طیبا بخورید آنچه در زمین از حلال فقام سعد بن عبی و قاسم رضی اللہ عنو عزت سعد و قاسم رضی شد اي رسول خدا عوض الله عزت صحب نبی و قاس میگو یا رسول خدا دعا کن انیجان اینی مستجاب دعوه پیغم رسول خود مجد برش بروی که برو من بر که مستجاب دعوه شدی نیدیم پیغم رسول خود فقال یاسا برش گفت ای صحابی ایتوالن و قبر ای صحاب سحبه فبین بود که وقتی که وفاد کرد در جنازی از چندین هزار ملایکت پیغم رسول خود گستاد چندین هزار ملایک فقال یا سعد اطیب مطعم اکن که پاک بساز حلال بساز تکن مستجابت دوان باز اونو وقت دالت دو اجابت میشه اگر غذای پاک بود ای قایده است و دعای فلانی و دعای فلانی مستجاب دوانه نشه پس مثلا چه دعا نکرد نه والا <سؤال> مثلا پیش فلان نفر میرم برای من دعا کننده که باید دعایی من خدا قبول میکنند نه خیر ابدا چون پیغمبر سم برای حضرت سعب دعا نکرد؟ حقید هم بگیره؟ عمل هم بگیره پیغمبر من داد ما من دعا میگرم که تو مستجاب دعا شدی نشه که توی حرام میخونی با دفت مستفاره کنی پیغمبر من دعا کنه برو دیگه هرچی که خوردم خوردم نه این همش در اسلام ام صحابی داخل است داخل است تا روز قیامت است یعنی ای مسلمان چی درد بگیرم ای جوان مسلمان ای مسلمان ای بزرگ و کوچک مسلمان پا تا کن خدا دعایت قبول کساست دعا کردن خدا قبول نکرد دعا کردم خدا قبول نکد دعا تا خدا همان چه قصب قبول کنه. دعا تا خدا همان چه قبول کنه وقتی که حرام بخوریم و پیغمست سباز میگه واللذی نفس محمد بیدیه پیغمست همه قسم بزادیست که نفس محمد صلی الله علیه و وسلم در تصرف نسیان خدا همان هر لعظه خواسته باشه او را میتونه که زنده کنه یا بمیدنه این رجل لیاق دفن نقمت الحرام فی جوفی اگر یک نفر یک لقمه حرام در شکم خود می ما یتقبل منه اربعین یومن خداوند قبول نمی کند روز عبادتش و ایو ما و هر انسان که نبت لحمه من سخت و ربا فرنا رو بهی هر کسی که وجود یز از پول و از غزایی که از پول حرام و ناروا و سود و رشوت و غلطی ها و فریبگاری ها با وجود بده باشه او گرشت که از او پول وجوده تو گرفت فما رو اول نبیه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم قسم خورد که اولین چیزی که بای گوش ارتباط میگیرد آتش دوزخ است پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماند در حدیث شریف افتضاح روزنامه حاشت مصداق امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه آل عابد برایت قال قال رسول الله صلی الله و علیه و, و, قولا قولا اللہ اللہ و سلم هزت عابد برادران در راحت می‌گن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو ایوان ناس ای مردم ان الله طیب لا یقبر الا طیبا خداوند پاک است بغیر از چیزهای پاک چیزهای مردار نمی پذیره وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین خداوند عمر کرده مؤمنان به او چیزهایی که عمر کرده بود پیغمبران فقال یا ایها الرسل گفت پیغمبران خورو من الطيبات از چیزهای پاک بخورین و عمل صالحا و اعمال نیک بکنین به بما تعملون علیم ما بون چه عمل میکنین دانا هستن و قا و قال یا ایها الذين امنوا کل من الطيبات ما رزقكم بعد ما دیدم برای مصطفیان گفت که کل من الطيبات ما رزقناكم بخورین از چیزهای پاکی ما سم که ما برتون مسکردیم ثم ذكر باز میگه پیغمبر سلام الله که هر رجل یا شخص را که یا تیده صفر یا نفر در یا صفر در آزر با در آزر با در حرکت در و میره و میره و میره و میره و میره و میره اشعافه اغباره مویش و چیریش غبارانه در مویش و آمده گاد واتش در عزیز زیاد صفر یا مد يديه سما السماء اينو شخص بازيستار خود با طرف آسمان بالا میکنه یک قسمي يرازه بالا مي گه يا رب يا رب خدا يا دو و ما تعمله حرام غذايش حرام است به ساخت طرف گرفتا بالا لیکن حرام است و مشرابه حرام نوشیددیش حرام است و غویه بالحرام و غزاش تغذیه شده وجودش از حرام ف ام نایستا جابل چطور میشه که خداون دعای ازیر قبول کنه خوراکش حرام غزاش حرام نوشیددیش حرام زمینش حرام قسم خوردگی دعا کردگی بدروغ قواله ساختگی و باز این بفرد استخلابالا میکنم و با طرف خدای متعال استخلابالا میکنم خداوند متعال ارگز دعا حضوره قبول نمیکنم برادران مخترم وقتی ما میخوایم که اعمال ما قبول شدن این شرطها را باید در نظر داشته باشیم و انشاء الله تعالی در درستای بعدی درس درباره حلال و حرام که چی چیز حلال است و چی چي چیزها حرام است فقط مختصرا اونی چیزای پاک رو تا مختصرا که پاکی گاهی بذات یا چیست تعلق میگیره مثلا بعضی چیزاست که خداوند گفته این پاک هست حلال است حلال از بخورید و بعضی چیزا رو گفته که مردار رسید نخورید گوشت گوسه حلال است با گوشت خوک حرام است و احیانا پاکی با اسلوب استفرا تا تعلق میگیره یعنی وقتی ما گزفن وقتی حلال میشه که ما او را زمه درست کرده باشیم اگر زمه درست نشده باشن بسیاری کسا سم میره گوشت که در پشت سرش نشده است که USA United State of America در پشت صندوقش نشده است و قصف صلاح میکنه ایرانی ایرانی یکیلوی افتاده خورده میره و او بالم نیست که حتی برق بیشارا کشته شده بازنامشون بروبای چهید میمونم میخوره و دیگه استراتژیه که با قیمت و به شکل و با دستمادرزی بالتا لو می‌گه که مثلا اگر قیمت حلال بود اینا رو گوشتن نه حلال است چه وقت حلال است اول وقتی که صلوخه حیوان می‌دیم نور حلال است برای خداون بر محتاط که گوشت طیراش مثلا با احادیث صحیحت است گوشتای بر حلاله گوشت حلال است و حلال شلال است نور حلال, حلال است خب چه وقت حلال است برماتش حلال میشه حیواناتم αρمر direita لكن لكن خير شرط میشه که با شرط حلال میشه که تو اسپیسی حلال خیزه اما اگر مرغ علاوه بر اسپیسی دوزی و کمرو فریقوری غلته بخیبه هم به حرام میشه و شرط دوم میشه که باید وقتی که حیواناتو میخرین صبح شده باشه که ما شما با دیگه درباره صبح حیواناتو مثلا حیوانات است خود داشتیم و قبول از سوال ما اگر سوال داشتیم که این مسیری که در که و تعالیم الله دین او آج شریف اس کہ غذای اهل کتاب ولی آن ما شما میبینیم که آیا ای کشورهای اروپایی و امریکایی فلان اهل کتاب هستن نه خیر بعد از قرن هم بعد از انقلاب فرانسه دارکارت نظام اهل کتابی از بنفت فلان میشه نظام سیکولار سیکولری منظور از سیکولاریسم یا سیکولاریسم چی است جدایی دین از دولت یعنی برای شما گفته که برادر دین تنها در کلیسا است قصاب دین نداره قصاب قصاباش به سیستم سیکولاریستی می و حتی تا چمقیش یک کسی از اروپا از لندن گزارش ها بود گفتن که یک کسی گفت که من در شمال لندن گفت یک چی هستم یک کسابی است که یک مسلمان گفت ما اجازه ذبح ما می کنیم غفار و مفو به ترقیس لازم ها می سال که دو ساعت سه ساعت نه نفر، فان که حقوق حیوان ازت ادامه می گان و از سر ما یه بار ما مظاهره میکنن که شما چرا حیوانا کاری کار میکشین از علت هایی که اتحادیه اروپا خود ترکیه رو رد میکنه اینه که ترکا باید دارید قربان فایسلام بکنم که حیوانات خود را با برق چون زبح همه گفت تا وقتی که زبح همه ما شما را شامل اتحادی اروپا نمیکنیم یعنی فعلا در اروپا و آمریکا حیوانات زبح نمیشه. کسایی که اروپا رفتن و آمریکا رفتن خودتر می کنند. نسبت به من معلوماتی زیادتر است. اونتا معلومات های که من خودم از انترمیتی از... وسایل اطلاعات جمعی گرفتیم و دوستان ما دن اونها را کردیم گفتن که در اون که هسته فعلا قانون اینما تو از قانون سیکولاریستیس یعنی حیوانات باید توسط برق کشته شدن زبهن اجازه نمیتن و بر ماه شما وقتی که حیوان زبهنه شده باشه و خدا در که نشده باشه خوردنش برای ماه شما در منطقه ماه اطلاعات رف منطقه منطقه‌ای لغیر و جهت استفاده و در خطوات شیطان. برادران یوسف علی سلام در قرآن شریف که یوسف کشیم و بعد از او از جمله قوم صالحیم میشیم. قتل میکنیم یوسف؟ آه؟ و بعد از چی میشیم؟ قوم سالیوید از خواهد عرام خورا هم بگم یعنی عرامک همه یه خورا هم باز دوبه با میکنون قوم عرامک زمین عرامک گرفتی تو وقتی که نماز رو خواهی نمازت, نمازت نمیشه شیطان خوب بسیار چالاک است. شیطان اینه میخسیم ما شما تخصیص های مختلف داریم شیطان هم متخصص است. بنا هر کس مطابق مزاجش پروفسور را روی نمی دون برایش درس بتن. اکثر تفذیرین گفتاره شایدم اشته نفت‌لایی میگه که از دل خود فتوا اگر اگه تو اسلام و حرامه برش حلال فتوی. از این خاطر ما باید به با اون شکل عمل شد نه و عوز گناه اینو چند تا 3 است. عنوان سوال در مورد دنیای عقل و ایمان است. سوال قسمیکه خداوند جل جلاله با انسان ها جسم است؟ ذاتان است, است؟ که در سال و تعقیب درس در جهان بین اسلامی و درس های عقیده و توحید داشتیم. خداوند متعال جل جلاله ما شما مکلفیت ما چی است؟ که خدای عزوجل به انسان قریب است من حب للورید اشاره‌ای گردن کنم خداوند به انسان نزدیک است. خب آیا ما خداوند را جسم صفات کرده می‌توانیم با علمای عقید اسلامی قرآن و آیه‌های را که تشریح کردند گفتن جسم مخلوق است، روح مخلوق است و خداوند باید با صفات مخلوق توصیف نکنیم. و ای که خداوند با ما نزدیک است، آیا اگر می‌خوایم خداوند با ما نزدیک است مثل نزدیکی ماوتو تو پایمانی می‌شیم، این ایبرادا با ما نزدیک است. بین ما تو دو مخلوق است و آیت قرآن میگه نیست کمثلی شی شما نزدیکی خداوند و خداوند چیزی را مشابهت ندید بلکه خداوند به ما نزدیک است یعنی مراقب اعمال ماست ما را میبینه 24 کنترل میکنه و در هر جایی که ما باشیم نمیتونیم ما که از علم خداوند و از مراقبت خداوند خود دور بسازیم اما ای که میگیم که مثلا مسلمون تو اره قسم صفات جسم و روح و خداوند متعال جل کرده من چون جسم مخلوق است روح مخلوق است و خداوند متعال جل و از این صفات ها و منزه است. هنچان اگر ما بگیم چه قسم به مونیزنیک است این قسمی بکنیم مکان خداوند از مکان مبره و منزه است. تشکر فعلا واقعی یعنی نینات چین از نظام اهلی کتابی نا که تغییر کردن و بسوی سکلوسی رفتن فعلا ما بگویم که تمامی از انا واقعا که مداری توبار نیست مثلا اگه سلمان برای استفاده بکن چی از نظر تجارتی که داخلی خاک افغانیتان میشه افغانیتان به بدروازه اخته نه اما رئیس جمهور ما یا وزرای ما مثلا میرن در کشورای خارجی تمام سرنوشت کشور ما فیلا در کشورای خارجی ترتیب و تنظیم از اونجا تازمانگیه میشه، اینجا میره خطبیق میشه، عملی میشه. این این مردم وقتی که در مجلس میرن میشینن و اونجا دعوت هم میشه در میمانی از اونها بینن این مردم که میرن از نظر نزاکه این مردم چی تو بکنه؟ اوه اینان اون مردم من اخورن؟ اگر بخورن خوب؟ توان میاد اینا خوب؟ ولی اینکدر که بسیاری وقتا ما سما اگر وقت سفر داشتیم از <تصفيق> کابل به دیلی و سفر از دیلی و دبی و از دبی رفتین به یک کشور اروپایی مالتاس استیاردستای تایر خودش پیش محمد پرساند خدایی مسلم؟ گفتم یاس مسلم، تایر یا تایر من دبی و تایر yes, اروپایی بود. مشخص اروپای بود که برنج بی و برنج گوشت دار. بعدا سر برنج مشخص بود که فار مسلم و بعد گوجارش شده فارم مسلم. این کس خاصه باشه که دین خدا حبس بکنه. حتی یلگو اومد برامو گفت که برابر اینو خوش که این دعا هم شما مسلمان هستی که گفتیم بنام در اینجا بخوریم فرض خود نست که هر روز کباب یا مخ کباب کنن دال بخورن یا آنوز پیچی بخورن, بخورن. دو بخورن دوستان ملترم اگر جازیتان باشت از مهمان عزیز تخازه میکنیم یا چند کلمه بر ما تبرکن عرض بکنیم چیز بر ما بگویم بر ما که بسه اراقم من زیاده اصلا ضعیف است ماده به روسی باشه میگه که کاکدلا خدش هارو خودم تعریف میکنم بعد اگه چون اگه کس روسی یاد دار میتنه که ترجمه بکنم نسخه دستش بجه است الله أَكْبَر الله Adobe لا Adobe Adobe الله. لا Adobe Adobe الله. محمد رسول الله. Adobe Adobe لا Adobe Adobe الله. Adobe Adobe محمد رسول الله. الحمد لله على Adobe Adobe الحمد لله الذي من الله عليه وسلم. الله الله الله صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الحمدلله اول از ما بود یساوی ای یک جماعت تبلیج جماعت پاکستان اومد از ما نزدیک مسکو از ما نزدیک ای سوال جواب اسلام خوب من گفت نه یساوی خوب ای سوال جواب پس اي مسمنغ شنو شرك است مانغو استافرمان مان اا خب اا البداه بس اا الحمد لله رب العالمين مان دعاء يا رب مان له صراط المستقيم الحمد لله رب العالمين سيرز فسن مان مسلمان بود کنیم بود لله رب العالمین دست سل چطور کلمه خواب دلید؟ اشهد ان لا, لا من الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله الله اکبر <تصفيق> ای الحمدللہ رب العالمین دست سل از من بود از من فرمیلی هست دست سل, سل مشک مسلمان شدید من یک برادر گفت شما چی میه جنات جنات Man من گفت من داشتم ای باد داشت من جناب گفت روسیه شما گفت یا بود, بود مشکل بود یا من قیام شما جواب مشکل بود, بود من گفت من جمع چی من کار شما زیاد زیاد استحباب پس بود من دعا <تصفح> ای هجرت افغانستان من گفت من نیترس افغانستان نبي سال توكال ابراهيم عليه السلام شنو سايكم نسال ابراهيم عليه السلام توكل ای من الحمد لله رب العالمين اول شكرا لله الحمد لله رب العالمين ازمحضر الحمد لله من ماوسد دونين سان تشانه اي دوت كلهم جوفت ديانا دیانا دیانا اولين ماد ايل موفورملي مادر پدار برادر ای سیستر روسنا ای ازمو کوکو مامو مسلم خلاص أولا الحمد لله رب العالمين شكر الله من فكر مكني الله سبحانه وتعالى دوس مكني إيه أفغانستان أولا پوزدان پوزدان كو فرستان سويتسكي سعوز إيه پوزدان أفغانستان بور مثل تجيكستان أزباكستان قراجستان أفغانستان بور الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى اطراف والذين كنت تقول في الوقت أنه اورانستان الحمد لله رب العالمين الك guided فأولlag أظن لم أكن أغ wings شهيد أيضا الله سبحانه وتعالى فأولا لها ص کنفر مون اوغانستان نابد شریعت اوغانستان نابد سراط المستخم الحمدلله رب العالمين سرسان مشکل بود الله سمانه داره کمان بود ایمان الحمدلله رب العالمين رسی از دنیا پیسا از ما بود سی دوکان دونا تاریخ کلومی اخور انجا نابد ایجی الحمدلله لله قلب مشایل الله اکبر خب خب خب جزاکیم اگر یک دقیقه بخاطر ازی که بعضی از کسایی که در افغانستان هستند و بعضی کسایی که متاسفانه فریب خوردن و از حق دور هستن فکر میکن که شاید مردم روز روز اسلام ترک میکنن بلکه میبینید که ما در جایی که اونجا مرکز کفر بود مرکز الهاد بود خدای عزواجان در ای وقت خود یک کسره در اونجا پیدا میکنه که خاطر دین خود از خانه زندگی فامیل، از همه چیز دور میشه و می زندگی فقیرانه را در افغانستان که متاسفانم بعض از افغانه ما که خانه مسلمان پیدا شدن به این به طرف کفر اگر ما اسلام ترک کنیم خداوند از مرکز کفر از آمریکا و از روسیه انسانهای را رو پیدا میکنند که بلی قلب قوی از همه چیز دهید در یک منطقی فقیر زندگی میکنن یکن دو از لا رسول الله اكبر. الله اکبر الله اکبر برادر روسی این قصه بسیل مرشوان اقلی دو ایتان او با کسه رو روسی شروان که اسلام اگر بر سخالا پرندگیت الله سبحان و تعالى مدرم مولیکم یا الله عبادت دنبیس زمبلی یا الله و زیلا کل آقا مولیکم مدرم شو به از جالسی ما دمای دمای زمانی دمایی بیت می ما دوام شو به آسمان جان می پرست جهنم یا لا الله آسمان من чтобы он дал победу исламу, чтобы он дал нам милость и раббиль Я хочу немножко пример привести. В Коране Аллах два примера приводит. Один пример Адам, Адам он зял грех. Аллах Субхана его простил и الحمد لله الله علی سلام مثال تاوبة پیشتر تاوبة عادم الله علی می الله سبحان و تعالی پرستی. این شال الله مثال کیبر. الله سبحان و تعالی در جنت کیبر. Я дуа делал, я умоляю Аллаха Великого Мудрого, чтобы он лишил меня и вас в высоком И хвала Господа Небесы Земли, аль Ислам это чистая религия. Я вас хвала Господа и Земли, что Аллах мне дал миросбить сначала яссои, а улы, аль-Хамдул-Лrah, Белаламин Мусульмагинам. Аллаху акбар. Аллаху Аллаху Актура. و رسول الله محمد رسول الله امروز ما شما افتخار میکنیم که در وقتی که یک تعداد از انسانهای فروخته شده با کتابی که پیغمبرها را دشمن میده با کتابی که حضرات پیغمبرهایی که ما و شما ایمان داریم که معصوم هستند این پیغمبرها را قراب زنا و گناه و شراب خوری. متهم می سازن باز هم بخاطر فیسه نورم و دنبال از اونا امروز که خدای عزوجل وقتی کسی را ادعایت از نان و زندگی و پول خسر می شه. وقتی که عبدالرحمن در افغانستان مرتد میشد و به که ایلا می, می که عبدالرحمن مرتد افغانی پیسه فرس بود خاطر پول دمراه شد خاطر فیسه کنف انتخاب کرد نسبت و اسلام به خاطر پیسه سی خدا را به این یک خدا پگیرد و لعنت خدا را در شان خود پگیرد پاک رز خواست که تا هرکس برازو یک داله بتن ما مسلمان ها که مسلمان هایی که حقیقتا مسلمان مثل این تو مسلمان واره از خانه و زندگی و پول خود از همه چیز تیر میشن و من در یک منطقی فقیر زندگی میکنن تا ای از در زیر سایه لا اله نازید اعلان میکنیم که مردم افغانستان حقیقی و مثل حقیقی که در کل دنیا هستن و تمام مال دنیا زک زبی ایمان خدا هم از اسلامی تن دیگه این غلامای تن اشتایی باشه باشم ولی باز هم به یعوض از او اگر عبدالرحمن عبدالی ما امروز ما برادر مسلمان عبدالرحمن دیگی داره که مسلم تخلص میکنن ای عبدالرحمن جدیدیست که صرف بخاطر خدای عزمجال از تمام ارزشای مادی خود گذشته و هر کلمه از او در خلق اتمالی ملیون ها مس چهار بس الگستن در قلب ما دو کلمه ازیک از قلب پاکی ازی برامده در قلب همه گی کردند و همه گیر چشمایی به این است که خدای عزیز ای دین خدا حفظ میکنن ای قران خدا حفظ میکنن این کلمه تویره حفظ میکنن و تا روز قیامت قران خداوند حفظ بشه دین خدا حفظ بشه و بدا به حال کسانی که به خاطر پول و به خاطر و به خاطر چوتی و به خاطر منصب از دین اسلام میگذارن خوشا به حال شخصیت های بزرگواری که اومدن و نشانه شجاعت هم زیادند به و حتی کسانی که نیروی له فارس ای این نیروی تا که بفهمند که حق حاکستون بوتول بوسه است الله اکبر الله اكبر. الله اكبر. الله لا الله لا الله است نام کجا زندگی چی کار است؟ در کجا در افغانستان زندگی میکنه؟ و کار چی کار من اول ای مسلمان یا مسجد از میکند من می فکر چی پس من قران یاد گرفتی اول الحمدلله باکر سوره حین حفظ این اول پسانلی است من فکر میکنم سونات رسول الله اصلا اجازه میذ خیر خیر این دکان اونجا رایت دکان پسان لففش ایمان این اهل حمد الله رب العالمین دو شمشیر مسجد منیات از عجله پسام ان من مفرش ايه ايه رسول الله ما نغرس اي عطر اي اسواق دي سمعنا بسم الله سننا دعوه انجا ما بده دوسمك الاسواق من ما دوسمك ما نيات ان شاء الله اول لازم ان شاء الله قسم كار ان حوال از ازان منظر شیوت ازان بود ده صحف قسای و سا والسا دوتا زن عطر ما از این اخدش عطر که لیکن از سواد خلان الله خلان بحیق احمد اللہ اسمان اعطا لئی الحمد الدک از دوم مدار از مسلمان من الحمدلله رب, الحمد رب العالمين اول بدیسایی نام عبد الرحمن ای من کابل آماده ای بانده خانه بیشی دو نیم نکلیشم پرسن تاسکریت بور الحمدلله رب العالمین عالی خوب است علیم الله ای من اول نام عبد الرحمن یسایی یروشیه بود. حان اول شيئنا سبحان الله الله سبحانه الله الله عالم كبير من اول الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عبد الرحمن اول هيسدي انما الحمد لله رب العالمين يا عياض يي من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعضة فما فوقا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرد الله بهذا مصلاه يذل به كثيرا ويعد به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله صدق الله على المثال صدق الله على صحيح. سبحان ربك رب العزة والمعسفون والسلام عليكم والحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت السلامي العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افر لنا ظنوبنا اسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين <تصفيق> اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وافنا في من عفيت لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يحب عليك وإنه لا يزل من وليت ولا يعز من عديت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم صل وسل مبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه